یا سی قواعد یک امام رضا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علیه سیدنا القاسم محمد و علی اهل بیت الله في الارضين و رب العالمين له در بررسی الگوی بودیم برای رفع تزاهم ها الگوی که بحث میکردیم مبتنی بر این بود که مصلحت در زمینه های مختلف قامل تره همونطور که شریعت احکامش مبتنی بر مصلحت و مف... مسائل و مفاسد نفس الامری جعل شده این مسئله و مفاسد می تواند در سلسله اهداف تطبیق بشه دستیابی به مجموعه دستیابی به مجموعه این در این الگو اهداف مقتمی بر اهداف مبتنی بر مساله تعریف میشن یعنی دستیابی به هر کدوم از این اهداف میشه ایک ای نوع مسلحت. و تزاهمی که مطرح شد در هر کدوم از نزاها دو نوع تزاهم رو ما در نظر گرفتیم تزاهم میان اهداف در یک سلسله طولی یعنی اهداف مقدماتی با اهداف طول با اهداف میانی یا با اهداف غایی تزاهم پیدا کنیم این یک فرض بود یک فرض این که اهداف مربوط در یک مجموعه در یک رتبه با هم تضاهان کنند مثلا اهداف میان تضاهان بین اهداف مقدماتی و میدانی یا تضاهان بین اهداف میانی با هم شکل بگیره خب ما این رو بررسی کردیم و عرض کردیم که اگر ما بخواهیم رابطه تضاهم بین اهداف رو به صورت طولی در نظر بگیرم یه مشکل هست صاحب این دیدگاه جناب افضاد یوسفی هم که متنشون اشاره به این میکنه یه مقدار در این تردید کردن ما آمدیم از منظر این که رابطه علیت و معلولیت بین اون هست یا نیست بحث رو پیش بردیم گفتیم اگر رابطه اللی میان اونها وجود داشته باشه اللیت اگر انحصاری باشه همین که علت نباشه معلولم نخواهد بود دیگه بحث تزاهم منتفیست نمیتوان نباید از خلاصه تزاهم بین دوتا صحبت کرد بله جایی که علت یکی نیست چند تا علت داریم هم عرض هم می توانیم بحث رو مطرح کنیم بگیم خب اگر این علت یک نباشه اون هدف قایی که معلوله آیا منتفی میشه میگیم از راه دوم پیش میریم در واقع یک تضاهم بدوی به چشم آمد در اون جایی که علت و معلول هدف پایین و هدف بالا انحصاری با هم رابطه داشتن اما اگر علت و دست هم باشن یکی منتفی بشه اون راهش بسته نمیشه که ما به اون معلول که هدف بالاتر باشه برسیم خب اینجا این مقداری جای طرح هست تضاهم دو هدف همعرض عملا جای تره داره خب یه بحث این بود یه بحثم تضاهم بین این در یک نظام بود همین در نظام طولی بباشه در میان دو نظام یا سه نظام بخوام مطرح بشه تقریبا به اینجا رسیدیم ما اون قبلی رو یه مقداری بررسی کردیم دیدیم که خود تصویر مسئله بین تزاهمه یه هدف پایین تر و هدف بالاتر گیر داشت ابهام داشت مشکل داشت خب این رو بررسی کردیم اما تضاهم دو مورد دو تکلیف یا زلطه تکلیف در کنار یک دیگه جای داره حالا ولو اینکه اون محلولم شک بگیره معلول در واقع اگر علت معلول وجودی باشه در واقع اونها با هم رخ میدن و در واقع رابطه مختزی تحقق وجودی علت و معلول به صورت تو امانه. نمیشه اگه واقعا یکی علت باشه یکی معلول باشه واقعا به صورت تو و رابطه علیت در میان اونها در میان علت و معلول وجود داره و مفهوم علیت در واقع مدل خاصی مقبول مفهوم علیت از رابطه میان اونها انتظام میشه این چیز جدایی نیست بنابراین اگر واقعا اگر واقعا رابطه اللی بین اونها باشه علت و, و معلولی بین اونها باشه با تحقق یکی با تحقق علت معلول هم به صورت توامان خلاصه انتظام میشه تحقق پیدا میکنه همزمان با وجود اون با وجود و تحقق معلول در علت تحقق خواهد یافت بنابراین این دوگانگی خلاصه بین اونها ایجاد نمیشه دوگانگی فقط در عالم در واقع نظریه همین که این به وجود به اونم به وجود میاد مگر آنکه علت ناقصه باشه اگر یکی علت ناقصه باشه این مشکل وجود داره بنابراین اگر علت تام باشه این تحقق این به منزله تحقیقه اونه رابطه رو کشف میکنه پس در نتیجه در مجموع جایی برای تره برای بحث در فرض در واقع تزاهون بین علت و معلول به انحصاری نیست بله اگر معلول علت دوتا باشه معلول رو در ظاهر ما یکی فرض بکنیم این مسئله خلاصه به وجود می اما در مورد علیت غیر انحصاری صرفت به صورت بعدوی ما می توانیم, می توانیم صحبت از تزاهم اون میان اونها پیدا کنیم اونها رو مطرح کنیم بنابراین چرا میگیم بدوی چون که خود این علت معلولی رابطه وجودی شخصی دارن خصوصی دارن در واقع هر علتی هر علتی معلول شخصی و انحصاری خودش رو داره بنابراین اگر, اگر اگر یک علت تحقق پیدا نکنه معلول اختصاصی و شخصی اون تحقق نخواهد یافت این یه بحث مستقلی خب این بحث قبل بود نکته اساسی این که حالا بر اساس الگوی جناب استاد یوسفی ما باید چه کار کنیم ببینیم اگر بخواهیم رفع تضاهم بکنیم اینجا مقوله چگونه است اصلا جدول خاصی ما میشه ارائه بدیم چه تضاهم های شکل میگیره در همون مثال اقتصادشان بحث رو ما پیش میبریم علت در واقع قایی رو اون غایت رو که به عنوان هدف نهایی بود در واقع رفاه عمومی تصویر کرده بودند در مرتبه پایینتر اهداف میانی چی بود اینکه امنیت اقتصادی حاصل بشه اینکه ادالت اقتصادیش حاکم بشه آیا بین اینها تضاهم هست یا نیست اگر تضاهم رخ بده چگونه است؟ نکته اساسی در این بحث اینه که هر کدوم از اینها رتبه بندی می میگن نگاه کنید رتبه بندی هر یک از اهداف این به چه معناست؟ یعنی که مثلا ما میگیم تأمین ادالت تأمین مبتنی بر که در واقع ما یک الگویی رو میخوایم ترح کنیم که برای رفع تزاهم شکل گیری یه تزاهم در واقع مساله و که به عنوان اهداف میانی یا مقدماتی ترح میشه می در می تواند بر اساس ساخت مندی هر یکی از اونها در واقع تصویر پیچیدتری ارائه بده تصویر ای از فضاهم ها رو در واقع ایجاد کنه یعنی چی به این صورت که مثلا ما هر کدام از اهداف رو دارای مرتبه هر کدام از اهداف میانی رو بگیم دو سه رتبه داره هر یکی از اهداف میتوانه یکی از دو سه شکل باشه به چه صورت در قالب ضرورت مطرح بشه در قالب طبقه بندی خواستی که رتبه بالاش ضروریه به این صورت که یک رتبه در واقع تأمین سطح ضروری خب این بیان داره یه تأمین سطح در واقع مدل متوسطی از نیاز باشه نه اون سطح ضروری بلکه یک سطحی باشه که یک نوع گوشایش ایجاد بکنه این سطح گوشایش در حد ضروری نیست ولی چیه یک سطح خاصی است که اگه شما به اون سطح مثلا دارایی برسید این به شما کمک میکنه که فقط رفع نیاز ضروری نکنید در سطح این باشه که کفایتی برای شما ایجاد کنه خب پس یک سطح ضروری داریم، حامیه نیاز، حامیه مصلحت، مساله در سطح ضروری، تامین مساله در سطح کفاف و حامیه مساله در سطح گشایش. ببینید مثلا در بحث فقر شما می توانید چه کنید؟ بگید که یک فقیر مطلق داریم سطح برخورداری افراد یا برخوردار اقتصادی افراد رو شما بحث می کنید و سطح مندی اونها رو در نظر می گیرید و بر اساس اون بندی نیاز برخورداری و نیاز اقتصادی افراد به چه صورته؟ به این صورته که یک سطحی داریم مثلا سطح فقر مطلق فقر مطلق یعنی چی؟ یعنی این که عدم تأمین نیازهای ضروری یه سطح دیگه داریم سطح فقر نسبی یعنی اموری برای اونها تأمین شده اما برخی امور هنوز به اندازه نیاز تأمین نشده یعنی چی؟ یعنی اینکه که اون فقیره اگه شما بخوایید یک کسی رو از فقر مطلق نجات بدید یعنی باید نیازهای ضروری اون رو تأمین کنید ولو اینکه برخی از نیازهای دیگر او رو تأمین نکرده باشید در واقع سطح فقر نسبی چیه عدم ت... مبتنی بر عدم تأمین نیازهای سطح کفاف و گشایش خب در واقع اگر هیچ... اگر نیازهای ضروری و اساسی فرد تأمین نشه با زور یک نون بخور و نمیر میخواد داشته باشی میشه فقر مطلق حالا میشه برای شاخصهایی هم گذاشت و ها و نصاب ها کار نداریم شاخص ها و نصاب هایی هر کدام می توانند داشته باشند هر سطح از برخورداری یا نابرخورداری می توانند شاخص ها و نصاب هایی دارند می توانند نصاب براش تعیین بکنیم خب شما اگر بخواید بگید که تضاهم بین دو دسته از مساله رخ بده پس نیازها و, نیازها و مساله تامین ضرورتها ها تحمیل نیازها رو میتوانید در قالب در واقع بگیم نیاز مطرح بکنید رفع نیازها و تامین برخورداری ها می در سطح چی باشه به عنوان به عنوان مصالح و اهداف طولی می تواند لحاظ شه خب به چه صورت به صورت زیر در واقع رفع سطح فقر چیه؟ سطح فقر مطلق اینه که هیچی نداره اون چیز اساسی رو نداره هیچی نداره حالا نسبیه یعنی نیاز های اساسیش در واقع تأمین نشده در صورت عدم تأمین نیاز های ضروری و اساسی این سطح از فقر حاصل میشه اگر بخوایم بیان بگیم که هزا می رخ بده باید این سطح رو لحاظ بکنیم اگر بگیم که عدم تأمین نیازهای سطح کفاف و گشایش این میشه فقره نسبی خب حالا سطح نیاز یه بخص سطح برخورداری چقدر در واقع سطح مندی برخورداری اینو با هم تکیه داره برخورداری اقتصادی افراد خب این میتوانه خودش یه سطح خودشو داشته باشه سطح اول چیه؟ در واقع برخورداری اف اقتصادی افراد میتواند سطوح مختلفی داشته باشه یه سطح چیه؟ برخورداری حد عقلی. در سطح چیه در واقع اون سطح فقر متلقی که گفتیم فقط ایمندی خدا وجود داره زنده است اما خیلی نیاسه اساسیش تعمین نشده برخورداری متوسط بگیم بعد برخورداری حد اکثری خب اینجا ما اگه بخواییم بگیم اون برخورداری حد اقلی اگه کمتر از اون باشه میشه فقر مطلق اگه بیشتر باشه میشه چی وارد فقر نسبی شده حالا چقدر دارایی داره در واقع میشه برخورداری از کالاها و توانمندی ها در واقع ظرفیت های حداقل ضروری در سطح چی ضروری برخورداری متوسط بیشتره برخورداری بیش از سطح در واقع بگیم در سطح گشایش برخورداری در سطح ببخشید کفاف بگیم این کفاف زندگیشه میده نه اینقدر داره که ما او رو مثلا ثروتمند حساب کنیم نه اینقدر نداره که فقیر قش متوسط در سطح کفاف و در سطح قشن متوسط هم خیلی کشداره ها اما در اجمال بگیم در سطح متوسط خب برخورداری در سطح گوشایش یعنی به جای این که مثلا یه منزل کوچیکی داشته باشه رفع زندگیش بکنه در پنجره داره اما مثلا یه مقداری حالا اتاق به اندازه داره اذیت اونجوری نمیشن در سطح کفاف یعنی این که دیگه خلاصه بدون عذیت چندان برخورداری حد اکثری در سطح گوشایش یعنی چی نه تنها عذیت نمیشن در, در واقع اینقدر دارن بلکه یه حالت رفاهی هم دارن در رفاه زندگی میکنن مردم الان متوسط الان تو جامعه امروزی خیلی کش داره ها رفا هم در واقع نسبیه حالا به همش ما میگیم رفا اما اون سطح کفاف یعنی خیلی خوشبهالش نیست اما بعدم نیست وضعیتش اون بالاتر اسمش میذاریم رفاه خب این مفاهیمی که خود شما در نظر دارید ما الان اینا رو داریم تاکید میکنیم از این جهت که میخوایم سطح تزاحم رو بگیم خب این برخورداری ما الان مثال از اقتصاد زدیم خب مقوله های اقتصادی هم میشه شما تفکیک کنیم در واقع اهداف اقتصادی چی بود به بیان جنافساد یوسفی اینکه اهداف اقتصادی یکی اه هدف غایی اقتصادی بود این میشه چی؟ تأمین رفاه عمومی هدف متوسط چی بود؟ دو سه تا بود در واقع ادالت اقتصادی امنیت اقتصادی و رشد و شکوفایی اقتصادی حالا ممکنه شما مناقشه بکنید بگی آقا اینا رو من یه جور دیگه تصویر میکنم در ادال... مقدمات هم خیلی و هدف میدانی خیلی چیزا بود ما اون کار نداریم برگردیم ببینیم این تظ چگونه رخ میده؟ ایشان میگن که آقا هر کدام از این اهداف کشدارن و سطمند. خب در واقع اگه بخوایم تزاهم رو تصویر کنیم تصویر تزاهم در اهداف متوسط متکی بر چیه؟ متکی بر این است که هر کدام از اهداف مزبور دارای سطوح سگانه چی ضرورت کفاف و گشایشند حالا تو مقوله اون رشد و شکوفایی و برخورداری اقتصادی یک کمی شفاف بود حالا ما تو فرض بگیرید ادالت سه صد داشته باشه سطح ضروری، سطح کفافش، سطح گشاش باید اینا تصویر کنیم حالا ادالت اقتصادی سه صد داره به چه معنا میشه؟ ادالت سه صد داشته باشه؟ رشد و شکوفایی چه ست داشته باشه؟ خب اینا قابل تصویر ولی فعلا باید ما فرض بگیریم خب توی بحث ادالت الان اگه سه صد داشته باشیم میشه ادالت ضروری ادالت کفاف ادالت گشایش خب پس با سه مقوله ادالت اقتصادی دارای سه رتبه و مرتبه چه خواهد بود هر کدوم از اونها ادالت اقتصادی ضرور این یه مرحله بعد ادالت در واقع ادالت اقتصادی در سطح کفاف ادالت اقتصادی در سطح گشایش خب شبیه همین رو در تمام اونها ما باید مطرح بکنیم امنیت همینطور رشد همینطور رشد اقتصادی باید 300 داشته باشه رشد اقتصادی ضرور رشد اقتصادی در سطح کفاف و در سطح گشایش امنیت هم همینطور امنیت اقتصادی هم همینطور شامل در واقع سطح ضرور امنیت در سطح کفاخ امنیت در سطح گشایش یعنی چی؟ اون ضروریه اگه نباشه دیگه خیلی عذیت نمیشه قوام جامعه به اونه پس ضروری بودن یک امر در موارد مختلف به چه معناست؟ ضروری بودن یک امر در سطح مسال اجتماعی در سطح امور در حیطه امور اجتماعی این به این معناست که اگر اون نباشه قوام جامعه به هم میخوره بدون اون نمیشه زندگی کرد زندگی اجتماعی کرد جامعه شی... که شیرازه اگر زندگی فردی باشه شیرازی زندگی فردی اگر ما در بحث اجتماع داری میکنم که بحثای نظام های اجتماعیه شیرازی جامعه از هم خواهد پاشید خب یعنی چی؟ یعنی جنگ میشه به هرج و مرج میانجام در واقع هرج و مرج یا جنگ های گسترده مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینه که امر ضروری خلاصه رایت نشده اما ممکنه اگر اونها خلاصه تأمین نشه تأمین بشه در سطح حد اما در سطح کفاف, کفاف باشه مردم اذیت نشن ولی گوشایشی هم نباشه الان شما تو خیابان برید اگر گل و بوته و اینا نداشته باشه درخت نداشته باشه در حالت معمولی اذیت نمیشید بله اگر مثلا تابستان باشه مثلا نباشه اذیت میشه در حالت معمولی رشد اقتصادی به اندازهی باشه که چیه جامعه رو به هم نریزه. پس ضروری بودنه که هم در حیطه مسائل جامعه چیه؟ این یک معقول است پس این سه در واقع خودش یک معقول است اون سطح گوشای کفاف چیه؟ سطح کفاف در امور جامعه به این معناست که بدون در واقع این سطح به معنای اونی که با وجود اون وجود و تأمین موارد اون باعث در واقع سطح حد از رفاست سطح حد از رفاه خواهد بود اما عدم تحقق اونها مستلزم در واقع به هم خوردن زندگی جمعی نمیشه خب این بعد سطح کفاف در نظر بگیریم سطح گوشایش چیه اینکه در واقع فقط اون حالا یه تعبیر دیگه اون قبلی اضافه کنیم مستلزم به هم خوردن زندگی اجتماعی نمیشه یا افراد جامعه دوچار ناراحتی و بگیم اذیت چند اذیت نمی‌شوند من مثال ساختمان بزنم اگر در پی اگر دیوارش و ستونش و اینا نباشه اصلا خانه نیست اگر درو دیوار باشه پنجره نداشته باشه موجب اذیت میشه در گرما و سرما اما در پنجره بذاریم شیشه رو بذاریم رنگ نزنیم حالا یه نفر خیلی خوشش میاد اگر نباشه میگه من اذیت میشم اون یه بحث یه ها میخوایم بگیم که اگر لحاظش بکنیم ببخشید اگر نباشه آدم اذیت نمیشه ولی در پنجره شیشه نباشه آدم اذیت میشه اون سطح پس یه رفاه حدقیه در واقع سطح رفاه، اما اون رفاه هات بیش از این میشه سطح گشایش. خب، در خورداری جامعه از سطح گشایش، بدین معناست که رفاه حد رفاه حد تحقق یافته و نه تنها در واقع عدم اونها باعث اذیت نمیشه بلکه باعث در واقع خوشنودی و باعث التزاز افراد جامعه خواهد بود خب حالا اصل بحث ما این برای مفاهیم بود این رو من تذکران عرض کنم در واقع تطبیق این موارد در امور مختلفی می توان شکل بگیره در واقع تحقیق پیدا کنه این اصل ایده‌اش کجاست یک امر عقلیه در واقع این تقسیم این تقسیم به نوعی تقسیم عقلی یا یا اینکه شما در سطح یه سری امور ضروریان یا نیستند اگر ضروری باشه امور ضروری حالا هر عمری رو هر بحث رو میخوایم از هر سن که میخواه باشه اونایی که ضروری نیستن دو مرتبه کنیم اونایی که مقداری باعث خلاصه نبودش اذیت کننده نیست اما بودش متفاوته اینا دو مرحلهش میکنیم خب حالا اینجا الان ایشان میخوان چیکار کار کنن؟ اصل این, تق... اول این تقسیم در فضای فقه مقاصد با یه تعبیر حالا عربی خواستری معمولا رایجه و در واقع این الگوی دست توقع بندی و سطح بندی در واقع در بحث در الگوی در روی کرده بگیم فقه مقاصد فقه مقاصدی معمولا طرح میشه و اونجا تعبیره که معمولا میگن میگن ضروریات حاجیات تحسینیات به جای حاجیات و تحسینیات اینجا در امور اقتصادی گفتن سطح کفاف سطح گشایش به جای اون تحسینیات خم اون الگوی فقه مقاصده رو خیلی جا به کار می برند. حالا یه مقداری چون حتی حداقل این حسن این معادل سازی فارسی چون تقسیم عقلیه در انحصار الگوی مزبور نیست اما این که آمدن یه عنوان بومی خواستن درست کردن حداقل نمیم نیتشون این بوده یا نه اما این حس رو داره یه مقداری از اون ادبیات مقاصدی ما رو یه کمی دور کنه در فضای اقتصادم این سگانه بهرال وجود داره با اون مشابهت داره معمولا در روی کرد فقه مقاصدی در استفاده میشه اما در انحصار اون نیست خب اونجا چه استفاده میشه در واقع سطح یه دسته به عنوان برطرف در واقع سطح بندی در قالب مفاهیم سگانه ضروریات حاجیات و تحسینیات طرح میشه اما این تقسیم خلاصه این طبقه بندی در انحصار خدمت شما از کنم روی کرده مجبور نیست چنان در فضای در واقع الگوی مشابه در فضای اقتصادی هم در واقع مطالعات اقتصادی به کار میره و الگویی که جناب استاد یوسفی آوردن مشابهت با اون داره اما می توان از اونها اقتباس هم کرده باشه چون که در منابعی که آخر کتاب هست خلاصه از منابع فقه اختص... مقاصد هم هست می توان ولی الگوش اصل ایدهش در همه جای امر عقلیه در واقع در انحصار اونها نیست اما اینکه که ادبیات مستقل داره در واقع بکارگیری تعابیر مثل در واقع سطح کفاف و گوشایش تعبیری است که با ادبیات اقتصادی در واقع تناسب بیشتری داره و هرچند میتوانه در واقع در امور دیگر هم در حیطه های دیگه در نظام های دیگه هم استفاده بشه و این حس رو داره این حس چیه؟ این حس اینه که در واقعی مقداری ما رو از ادبیات مقاصدی فراتر میبره به کارگیری این مفاهیم خلاصه نشان میده که میتوان از فضای روی کرد در واقع میتوان به فراتر از روی کرد مقاصدی به این موارد پرداخت در واقع از منظر متفاوتی خلاصه به این موارد پرداخت اما مشابهت داره خب این تقسیم یا تق... توقعوندی کارآمدی خودش رو داره خب تحصیلش تو بحث تضاهم چیه خب اینجا دیگه مشابهه در واقع توقعوندی و بحث حاجیات و تحسینیات و ضروریات به درد این میخوره الان اینشان هم اینجوری گفتن گفتن ببینید اینها هم که دارید میگی یه سطحی ضروریه با اونها قابل مقایسه نیست در واقع ویژگی ذاتی در این تبقه بندی مستلزم دستیابی به بلگوی برای رفع تضاهم است چرا؟ به این معنا که امور ضروری نسبت به امور غیر ضروری اعم از سطح در واقع کفاف و گوشایش تقدم دارند اصلا چرا؟ چون که خودمون اصلا داریم میگیم ضروریه در واقع به تعبیر دیگه تقدم امور ضروری بر غیر ضروری اصلا برآمده از اصل این دوگانه سازی است سازی و ماهیت این دو دست است خود اون داره میگه یکی ضرورت داره دیگه اگه ضرورت داره یعنی چی؟ یعنی مقدم بشه ضرور خب این به بت... یه ای امر بدیهیه تق... خلاصه برآمده از اصل سازی ذات در واقع ذات این دوگانه مزبور هست خب پس اینو دیگه نمیشه را گیم که اه اه آقا مقدم نشه هیچ کس در در تقدیم امور ضروری بر امور غیر ضروری تردید نمیکنه؟ پس بنابرا این این تقدم این تقدیم و تقدم در واقع امری بدیهی است؟ چه مورد تایید شهر هم هست؟ لذا اونجایی که اون دحث الگوی ای ای آقای سوسو رو می گفتیم می گفتیم اونجا گفته آقا الگوی تقدیم ضروریات و اینها نوعش و رتبش متفاوته در واقع همین بود این هم در واقع برآمده از در واقع تفاوت رتبی اونهاست خب اینجا تو در آمده بعدی هم همینطور تفاوت سطح گوشایش با سطح کفاف این هم مبتنی برینه این مبتنی بر در واقع در در واقع بگیم چیه؟ حکایتگر تفاوت رتبی اونها در میان امور غیر ضروری است. یعنی اگر بخوایم تو این غیر ضروری ها بگیم کدامش ضروری تره با تسامو همین سطح کفایت، کفافه میگه آقا این اذیت میشه اون میگه اذیت نمیشه اون الان بهتره در واقع میتوانیم این دو رو این دو سطح رو به, دو، به سطح مندی در واقع امور مستحب و مستحبات اکید تشویح کرد به یه معناه اصلا از مساد تشویح کرد یا اون رو یا اونها رو از مسادی رو اون شمرد اگر واقعا مستحب باشه اگر واجب باشند، چونان که اگر در واقع امور مربوط به سطح کفاف از سنخ واجبات باشند امور مربوط به سطح گوشایش از سنخ امور در واقع واجبات عکید خواهند بود درسته؟ خب البته اینجا با اگر ما گفتیم تو فضای فقه مقاصد فقط این یه جوری ماهیت تعبیر مثلا حاجیات و تحسینیت یه جوری آدم ممکنه بگه آقا مستبات رو بیار اینجا یا بگیم چیه یا به تعبیر دیگه می توانیم بگیم بگیم اون سطح ضروریات واجبات اکیدند در واقع این بحث مربوط امور ضروری را میتوان از سنخ واجبات اکید تلقی کرد چنان که بگیم این موارد کفاف چنان که موارد مربوط به سطح کفاف از سنخ واجبات تلقی شوند در این صورت این امور مربوط به سطح گشایش از سنخ امور در واقع مستحب تلقی خواهند شد. حالا حال خود اینا میتونه دو سطح باشه. در واقع اگر اینها رو بخوایم تطبیق کنیم اگر بخوایم در واقع تطبیق بکنیم این امور اینطوری خواهند بود. یعنی اگه در واقع برای تطبیق امور مربوط به این سطوح ما میتوانیم میتوانیم اونها رو در, در واقع رتب بندی واجبات و مستحبات خلاصه تطبیق کنیم اما به چند و این تطبیق دو جور میتوانه باشه خب یکی این که اون دو سطح بالاتر رو واجب تلقی کنیم یکی این که نه سطح بعدی رو واجب بگیریم بیایم اون پا... یکی شو مستحب بگیریم خب اگر این طور بود این سطح بندی میتونه در نسبت ناظر به خلاصه مصالح در واقع به اموری باشه به اهدافی باشد که از سنخ احکام شرعی هستند و در قالب عناوین کلی مانند مساله یا اهداف لحاظ شوند خب حالا تاثیر اون که مهمه ان شاء بعد از 4 5 دقیقه ما در بحث تزاهم این رو تطبیق خواهیم کرد <تصفيق> الحمدلله رب العالمین اگر فرماشی دارید در خدمت